با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجیان عزیز تلویزیون رنگین کمان بخش 24 گفتار در باره کستوی را شروع می کنم در بخش 23 ما مطالبی در مورد کستوی گفتیم در این بار سخن گفتیم که کستوی و زمانی که از عدلیه بیرون آمد یک مسلمان حتی میخوام بگم خرافی و ارتجاعی بود ولی در سال 1324 قبل از قتلش یک انسانی آگاه و یک فیلسوبی بزرگوار بود و باز در بخش گذشته سخن گفتیم مقایسه کردیم افکار کسدوی رو در سالهای شروع. کار مثلا صلاح وکالتش و شروع مبارزات نوشتاری و گفتاری خارج از ادیش تا سال 1320 به بالا که وقتیام رضا شاه کسانی فریادش بلند شده بود به هر حال گفتیم که در همون سالهای 1311 که یک شیعه تمام ایار بود ولی حالا میخوایم ببینیم که همین کس روی در سالهای بعد از سال بیست که گونه تصور میکنه در باره در اون سالها به تمام امامان متقده به علی متقده به پیغمبر متقده به اسلام متقده ولی در طول ده دوازده سال بعد تخییر کاملی یافته کس روی اولا در درباره دنیای فساد مرد نبینید چی می نمیشه هر گونه تصورات خرافی و ارتجایی رو حذف میکنه میگه در باره روز رستاخیز موسی یا مسیح یا پیغمبر اسلام و امامان به میانگیگری خواهند برداخت و پیروان خود را به بهشت خواهند رسانید اینها پندارهای بسیار آمیانه و است بویژه اگر داستان تلقینی که در حین خاک سپاری مسلمانان به مردگان میدهند مسلمانان رو یک مسلمانی وقتی میمیرد قبل از اینکه به قبر بگذارند یک نفری در اونجا میاید و به او تلقین میکند که خب نکیر منکر یاد این چونین جواب بده در مورد اسلام این چونین جواب بده این رو میگن تلقین گذاشتن به قبر کسی اینجا به این اشاره میکنه میگه که ببیشه اگر داستان تلقینی که در حین خاکسپاری مسلمانان به مردگان میدهند و همچنان افسانه های لواء و پل سرات و ترازو و مانند اینها رو به آورید خواهید دید که چه رسوایی است سخن را گوش کنید آنگاه خطاب به ملایان ادامه میدهند خوب ای بیخردان داستان دین داستان دین آموختن به مردگان یعنی تلقین برای چیست می نویست خوب ای بی خبران داستان دین آموختن به مردگان یعنی همون تلقین برای چیست مگر خدا از حال مردگان آگاه نیست که منکر نکیر و منکر را به، نکیر و منکر را به پرسیدن و آزمودن بفرستد مگر دستگاه یک پادشاهیست که هرگز از مرز در آمد او را نیازمند نیاز باشد پس از همه چرا به تازی میپرسید میگه چرا به عربی میپرسید یک ایرانی مرده یک فرانسوی مرده یا هر زبان دیگه چرا به عربی باش میپرسید پس،, پس از همه چرا به تازی میپرسید مگر مردهی زبان تازی شناسد آن افسانه ترازو چیست مگر نیکوکاری و بدکاری گند و جو است که با ترازو کشند میگن وقتی مردن ترازوی میارن و گناه ها و ثباب هاشو میزارن در ترازو میکشن خطاب کسی به این مسئله است میگوید آن افسانه ترازو چیست مگر نیکوکاری و بدکاری گندم و جو است که با ترازو کشند آن پول سرات، آن پل سرات باریکتر از مو و برندهتر از شمشی چه می باشد آن افسانه میانجیگری پیغمبران برای پیروان خود در مقابل خشم خدا چه چیز است چه معنی دارد مگر خدا یک پادشاه زود رنگ و خودکامه است کسانی در برابرش میونجی کردند این مطالب را در پیمان سال هفتم شماره 8 اردیبهشت 1321 در صفحه 495 بیان کرده است خوب ما تا اینجا سخن از عقاید کشروی در مورد دین و پیغمبر و قرآن و تشریعه گفتیم البته در آینده سخن زیادی داریم زیرا که کسروی پس از سالهای بیست بیش از اینها در مورد خرافات و حضورتون عرض کنم در مورد بیش از اینها در مورد خرافات و احتجا سخن گفته است اینکه میپردازیم به زن مقام زن از نظر کسوی ما در پیمان سال شمار در پیمان سال اول شماره نه فروردین 1313 به این مطلب رسیدیم که کسوی نگاهش به زن همانند نگاه است خرافی است، زن را در حد یک حیوان می داند ما در آنجا گفتیم در بخش های گذشته به این مسئله اشاره کردیم ولی در اینجا هم می‌بینیم در همین پیمان چهار تا سفارش کرده میکنه به زنان گویی زن گردوست زن چیه میگه پاسبانی زنه بکنید مگه مرد سگ زنه می که پاسبانی از زنان را دریغ ندارید و آنان را از آمیزش و یا از آمده شد که بیم لغزش و آلود دامنی در باری آنان دارند باز دارید خب طبیعیست یک روحانیست یک ملاست از در عین حال سرتاب هایش در گیر بانوان است تصور می کند که این بانو پاسبان لازم دارد سفارش دوم میگه هر جوانی چون به سال 25 رسید زن بگیرد وگرنه او را از حقوق آدمیگری بی بحره سازید باز هم همین مطلب است تو چه کسی هستی که یک انسان دیگر را از حقوق آدمیگری بی بسازی تا از این راه زنان پرستار پیدا کرده و از رفتن به کارخانه ها و از افتادن به راه نابکاری ایمان باشند سفارش سوم میگه که اگر زنی نیازمند حرفی جدید، او را به کارهایی راه نمایید که کمتر آمیزش با مردان پیدا کنید که کمتر آمیزش با مردان پیدا کنند همانند رخت زنان دوختن و بچشی دادن و طب و دندان سازی زنانه و اینگونه کارها زین آنان را به کارهای مردانه راه ندهید و بالاخره سفارش چهارم میگه دستگیری از زنان را چه خیش و چه بیگانه نشانه مردی شمارید یعنی ما مردان مردیتشون استفاده بکنن و از زن دستگیری بکنن یعنی دستگیر زن یک انسان است که احتیاج به مرد دارد ولی در مقابل تحولی که رو باز در سال 1318 در مورد همین زن میگوییم که هنوز زیاد متعول نشده کتابی نوشته خواهران و دختران ما در اون کتاب و قلاده زن رو از قید تمام این مطالب آزاد ساخته ولی اینو در پیمان سال 1318 می نویسد که زن باید خودسر نباشد نه از آن که او آزاد نیست بنابراین در این تاریخ به این نتیجه رشته که زنم موجود آزادی باید باشد بلکه از اینکه بسیاری از مردم سیاهکارند و به او صدمه میزنند در, ب... در این فرصت بنده در گذشته اسم از کتابهایی بردم که این کتاب‌ها رو معرفی نکردم و استفاده میکنم از فرصت اینا رو خدمت بینندگان عزیزم معرفی کنم کتابی که الان میخواهم بهش اشاره کنم کتابی به نام در راه رستگاری که نوشته این کتاب به طوری که حضورتون خواهم نوشت در سال 1316 به قلم کشیده شده ولی در سالهای بعد این مسائل رو جمع کردن و کتابش به این نام کردن که بنده در اختیار دارم در گذشته به کتاب به نام شهر گمنام اشاره کردم که کس نوشته و در این کتاب مطالب جدیدی در مورد تاریخ بیان ساخته از قرعه ذهن تاریخی بیرون کشیده در مورد دیلمیان در مورد جستانیان در مورد کنگریان در مورد احمدیلیان در مورد شدادیان و مسائل دیگر سخن گفته که در نوع خودش جدیدی است در مورد من در گذشته حضور از کردم که شا... کسوی در سال 1307 زمانی که در ادبیه بود و همراهی گروهی برای ماموریتی به قرب ایران مسافرت کرد و در همونجا هم بود که گفتم با عارف قزوینی آشنا شد در این تاریخ در مورد 800 نام ده مطالعه کرد و پس از آن این اسامی رو به از این اسامی کتابی درست کرد به نام نام های شهرها و دیه, دیه ها در این کتاب در حقیقت شناسنامه روستاها رو کسوی پیدا کرده که از نامش چی بوده؟ از که یا آمده؟ زمان زرتشتی بوده؟ زمان عرب بوده؟ زمان مغولان بوده؟ و مسئولی از این قبلی. و کتابی هم گفتیم که سوی نوشته تاریخ شیر و که آن را هم باز که خوشبختانه 2536 یعنی قبل از جمهوری اسلامی که دست برد نکردن به داخلش یک کتاب دیگری هم کشاره کردم به نام آین و مفصل در بارش گفتم همین است که در این تاریخ از دین اسلام دفاع کرده و زن را به الوانه. یک بشر جنس دوم به حساب آورده این به یک کتاب دیگری مراجعه میکنیم که این در سال 1316 نوشته شده این کتاب اسمش در راه رستگاریه برده این همین آن نشانتون دادم بررسی این کتاب مرحلی دیگری از تحولات فکری که سویر روشن میشازد در سال 1316 در اوج قدرت غزاشاهی به قلم کشیده شده است تعداد صفحات کتاب هفتاد ورق است و از 24 گفتار تشکیل شده است هدف اساسی این کتاب پیشنهاد یک دین واحد به نام پاک دین است در همین جاست که کسزوی مدعی پیغمبری است و به همین دلیل از حضورتون از کردم که این دعای پیغمبری با مدعیان دیگر فرق زیادی داشته جهنی کستوی به پیغمبر هیچ گونه ای قائل نیست پیغمبر را انسانی میشناسد مثل انسانهای دیگر که توانسته است به اصلاحگری بپردازد مقایسه میکند گفتیم در جلسه بعد مقایسه میکند پیغمبر را با یک پزشک که تخصص داره با یک مهندس احتمالا که تخصص داره با یک فیلسوف اینا پیغمبر هم در راه اصلاحات تخصص داره و کار میکنه و راه میره در این کتاب است که با ادیان در افتاده است به اعتقاد او ادیانی که امروز در جهان موجودند در اصل یکی بوده ولی امروزه آلوده شدند بنابراین همه اینا رو با تزد کنند از اینجاست که کسردی با ادیان در افتاده و از اینجاست که دشمنان قسم خورده ای برای خودش کشف کرده می نویسد دین از زرتشتی و جهودی و مسیحی و مسلمانی که در جهان رواج دارد هیچ اکبادیگری راست نیاید علت اساسی بدبختی و سردرگومی جوامع را شعاب در دین و پیدایش مذاهب و فرقه متعدد می داند البته به گمان من مطالب دیگری هم هست که موجب بدبختی انسان ها می شود و به دین طبیعیش که آمل اساسیش یکی از آوامل معتبره کسری بیدینی را به اعتقادات سست و گمراه کننده مذاهب و فرقه ها می‌دهد. می دهد اگر آدمیان را دین می یک دین درستی را با راهنمایی نمایی خرد پیدا کنند ما گفتیم که کسری به خردگرایی اخلاق گرایی و وحدت گرایی معتقد است و گفتیم که خودش معتقده که تمام راهش رو تمام راه مبارزاتش رو در با خرد اینه مثل یک کیلسوف اگر آدمیان را دین میباید یک دین درستی را با راهنمایی خی... خرد پیدا کنند و اگر نمیباید به یک این اندیشه های سست و پراکنده را دور بریزند کسی که خارج از یک خرد میخواد یک دینی رو بپذیرد خارج از خرد وقتی میپذیرد یعنی دینی نیست که خرافات در اون است این نیست که اعترا... ارتجاء در اون است دینی که مسائل نشدنی رو به قول کسانی معجزات رو در اون مطرح کنید میگه شما می‌خواد این که خودتون خراب کنید این ادیان رو بگیرید اف... افکارتون و اعصابتون خراب کنید بهتره که بی‌دین باشید اینا به درد نمی‌خورن وی برای انتخاب دین خرد را بهترین وسیل میپندارد عرض کردم منظور بی از خرد از دین بعد اندیشه های سست و پراکنده خرافاتی است که در مذاقب مختلف رسوخ کرده است گفتیم در گذشته به خدا اعتقاد دارد و ما پیروان ما دیگری در این تاریخ به این دلیل که خدا را قبول ندارند و به روان خرد در کالبود انسان معتقد نیستند مخالفت می کند و در پس سالهای پس از این تاریخ خواهیم دید که رابطه اش هم با همین افرادی که مادیگرا بودن تنگتر کرده ولی هیچ وقت خودش رو تصدیم مادیگرایی نکرده می نویسد که دین یک رشته راستی ها و دستور که آدمیان به دانستن آنها نیاز دارد کسوی در این کتاب در کتاب راه رستگاری علاقه مادیگری با داروینیسم هم مخالف است. به لحاظ احترامی که به انسان دارد تئوری تبدیل انواع داروین را توبیل به مقام انسانی می داند. هیچ وقت کسوی این تئوری رو ناتوانش قبول بکنند به لحاظ اخلاق گرایی که نه تنها کسروی تمام ملایان هم اخلاق گرا هستن می می‌نویسد چگونه آدمی از بوزینه جدا گردیده آدمی کجا و بوزینه کجا بین حیوان و انسان کسروی فاصله لازمه علاوه بر این ما می دونیم که کسروی معتقد بود که انسان روان دارد حال که انسان از بوزینه جدا شده به قول خودش یا به قول داروین چگونه شده که روان هم در اون پدیدار شده یک مطلبیش که میتونست پدیدار بشه روشن است که درست کردم اخلاق که مثل اخلاق المتیجه اخلاق گرایانه افکار اخلاق گرایانه چون این فرضیه ها را دور از شنه انسان میشمارد وی آدمی را برتر از جانوران میداند و معتقد است که گفتم در گذشته علاوه بر دو عنصره تن جان که به طور اشتراکی در قالب انسان و حیوان وجود دارد قالب آدمی دارای عنصر روان نیز می باشد که او را از جانوران متمایز می‌سازد. می سات می نویزد آدمی گذشته از تنو جان دارای روان می باشد این روان است که به وی ارج آدمی گری می دهد و این روان است که پس از نابودی تنو جان باز می ماند خب مسئله کس قابل بحث است و گروه زیادی می که امروز با علم و مسائل دیگه قبول نکنند و یا می تونن قبول بکنن این مسئله بین شادگی نیست کسوی در این بره از زمان هنوز امامان شیعه را محترم میشمارد سال 1316 بنابراین هنوز به تشیعه و مینویسد امامان پیشوایان دین بودند و باید همواره نامهای آنان را گرامی گرفت ولی این ندرست است که به آنان در دین جا باز کنند و یادستند در کارهای خدا شمارند میگه امام بوده امامان راه دین بوده قبول میکنه در شیعه ولی این که امامان را بت ساختن به امامان نسبت می که همون که در گذشته ها گفته شد به سلا خورشید رو جابجا جا یا با مار سخن می سخن میگویند و یا مسائلی از این قبیل هرگز کسی قبول نداره همینطور در این تاریخ فیل از روحانیان انتقاد میکنه می نویسد می که ولی هنوز نامی از بزرگان دین ملایان پیش نمیکشه بعد در مورد فلسفه از فلسفه انتقاد میکنه از صوفیگری انتقاد میکنه در باره صوفیگری می نویسد که دسته دست مردان از خانه ها در آمده در خانقاه ها جا می گرفتن. خواستند از خودی درآیند و به خدا پیوندند از چرا؟ از راه بیکاری، بیزنی، پشمین پوشی, برخی گدایی و در و این دو چیزها را هم بران اضافه کردند. گروهی پایکوفتن و آواز خواندن را از کارهای روزانه خررد ساختن کهیه آدم جدی استکس معتقد است که انسان باید کار کند تا زندگیش را بگذراند. معتقد است که پایکوبی و مسائلی از این قبیل کار درستی نیست برای یک انسان در یک دین به همین دلیل فرقه تصوف را صوفیگری را نمیپسنده و با آن مخالفه از فرقه های دیگر هم را رانیست از دم تیغ تیز انتقادش می گذرونه می نویسد که این دسته که به نام های اسماعیلی و قرمتی و ملحد نیست خانده شده هند کاری با خرد نبرد نموده و به آشفتگی اندیجه ها گوشیدند باز درباره خراباتیگری که ما به خیام بیسیم در این می نویسد که از جمله افکار منحط خراباتیگری رو مطرح میکنه و میگوید ما چون نمیدانیم خراباتگری می میگویند که ما چون نمیدانیم از کجا میاییم و به کجا میرویم باید همواره مست و بیخود باشیم و به گذشته و آینده نپرداخته دمی را که درانیم عرشمند شماریم و جز با خوشی نگذاریم کسوی در این کتاب کتاب در راه رستگاری ضمن انتقاد از فرقه های فوق که حضورتون از کردم تاریخ مختصر ولی مفیدی از این فرقه ها بیان کرده بیننده های گرامی رو به صلاح ازشون میخوام اگه خواستن واقعا دقیق این تاریخچه این فرقه ها را بدانن و به طور خلاصه به این کتاب مراجعه کنن و سنت ها و آداب و آنان را به رشته تحریر که جیده. همچنین کسوی در این کتاب از شعر و شاعری نیز انتقاد کرده و این مشکلات کشور و بدبختی های مردم را در نتیجه پراکندگی دین ها و مذاهب و فرقه ها شمرده است از فرقه و مذهب و دین شیعی، سنی، زردوشتی، جهود، ترسا، بهایی علیاللهی، اسماعیلی صوفی را نام برده و معتقد است که یه چیزی در اینجا بگم اینا رو نام برده و در این حال به شیعی هنوز معتقده و معتقد است که در یک جامعهی که یک فرقه مذهبی به وجود میاد که در اقلیتی موجب به همیختن جامعه هم میشه می, می نویسد که کن اقلیت مورد آزار اکثریت قرار میگیره مورد ستم اکثریت قرار میگیره در زمانهایی که جامعه به هن میخوره ویژه در زمانهایی که حمله میشه به جامعه این اقلیت از اکثریت حمایت نمیکنه، بلکه از اون مهاجمین حمایت می و اینم دلایلی است که کسوی در این باره آورده مینویسا در همیشه تحت ظلم اقلیت همیشه تحت اکثریت قرار گرفتند و به دین دلیل اغلب از اکثریت دل خوشی ندارند و در فرصت‌های مقتضی بر علیه آن اقدام می‌نمایند و نتیجه می‌گیرند به همین دلیل بود که در حمله مغول ترسایان و جهودان پیشکار ایشان بودند و از زیان و آزار به ایرانیان باز نایستادند در فتنه افغان زردشتیها ها با آنان بر علیه کشور همراهی نمودند. در جنگ های ایران عثمانی کردان جانب دشمن را گرفتند نتیجه ای می بنده قبل از پایان این بخش به این نتیجه نیز اشاره می کنم تا کتاب راه رستگاری را هم همزمان با بخش 24 به پایان برسانم پس در این کتابش کستوی ببینید نتیجه چیه؟ میگه بدانید ایرانیان این پراکندگی ها ریشه شما را کنده گفتیم کستوی باستی کار میکنم گراست، اخلاق اخلاقگراست و وحدتگراست یک دین یک پرچم و در اینجا به این اشاره میکنه بدانید ایرانیان این پراکندگی ها ریشه شما را کنده بدانید در چشم دیگران بس سبک و بیارجتان گردانیده ای ایرانیان گذشته ها گذشته امروز به خداید و زمانی نیک بیاندیشید ببینید چه چیزهاست که شما را از هم جدا ساخته افسانه مهر و ناهید نبرد اینجا دیگه به ادیان اشاره میکنه که همه ادیانی که کهنه شدن اینا رو بذارید کنار افسانه مهر نبرد پنداری نبر اهریمن و یزدان پرستش آتش های کهان بنی اسرائیل آدتهای پوسیده سهزار سه سالی جهود چیستان سردرگم سه اغنوم سه اغنوم ارز کنم که در مسیحیت هست دیگه، پدر و پسر و حدورتون از کم روح القدس چیستان سردرگم سه اغنوم کشاکش کشا... کشا... های زمان زمان بنی... اومیه و بنی عباس بر سر جانشینی گذافه های پادر هوای جنید و بایزید به, سو... به تصوف میپردازه زورگوی های خردکشانه باطنیان در همبافی های این شیرازی منظور به علی محمد باب اشاره میکنه این شیرازی و آن نوری حسین علی نوری برای مذهب بها اشاره میکنه. این هاست آنچه که یک کشور را از هم پراکنده است این هاست آنچه که مایه بیدینی ها،, بی ها و بدنهادی ها شده است و بخش 24 چهارم رو هم در اینجا خدمت پایان میدم تا فرصت آینده زپاس از شو.